داستان بالالیکی کهیر میزند. مرد ماهیگیری بود که یه پسر داشت. پسر وقتی پدرش رو میدید که سوار قایقش میشه و به دریا میره بهش میگفت پدر میشه منم با خودت ببری؟ و ماهیگیر جواب میداد نه ممکنه طوفان بشه. اگه دریا آروم بود چی؟ نه ممکنه سگ ماهی تو رو بخوره. اگه فصل سگ ماهی نبود چی؟ نه، ممکن قایه غرق بشه. خلاصه، مرد ماهیگیر تا نه سالگی پسرش رو منتظر گذاشت. ولی بعد از اون، دیگه پسر به حرف پدرش گوش نمیداد و مرد ماهیگیر چاره ای نداشت جز اینکه پسرش رو هم با خودش به ماهیگیری ببره. یه روز که با هم به ماهیگیری رفته بودن، ماهیگیر تو رو انداخت وسط دریا و پسرش هم قلاب رو. ماهیگیر تو رو کشید. اما دریغ از حتی یه ماهی کوچیک، اما پسر وقتی داشت قلابش رو می یه ماهی گنده گیر کرده بود. اینقدر سنگین بود که پسر نمیتونه سونو رو بالا کشه. ولی بالاخره با هر زحمتی که بود این کار رو انجام داد. بعدش هم به پدرش گفت پدر میخوام خودم این ماهی رو پیش پادشاه ببرم. به ساحل برگشت و نباس ترتمیزی پوشید و ماهی رو روی جلبک های سبز کف سبدش گذاشت. بعد هم رفت پیش پادشاه. پادشاه وقتی ماهی رو دید دهنش ها افتاد. خدمتکاروش صدا کرد و بهشون گفت به این پسر پنجاه سکه باید بدین. بعدش هم ازش پرسید اسم چیه پسر جون؟ پسر ماهیگیر جواب داد. پیدزو، خوب پیدزو، دوست داری که تو قصر سلطنتی بمونی؟ پسر جواب داد: بله، خیلی دوست دارم. و اینجوری شد که پیدزو با موافقت پدرش توی قصر بزرگ شد. لباس ابریشمی پوشید و تحت تعلیم معلمای زیادی قرار گرفته بود. توی قصر باسواد شد. یه پیدزو صداش نمیکردن. کردن بهش می گفتن شوالی پیدزو. بشنوید از دختر پادشاه. اسم دخترش پپینا بود. پیدزو رو به اندازه جونش دوست داشت. وقتی 17 سالش شد پسر یه پادشاهی اومد خواستگاریش. پدر با این موضوع موافقت کرده بود. وقتی با دخترش صحبت کرد تا اونو برای عروسی رازیش کنه تپینا راضی نشد. چون اون آشق پیدزو بود. به پدرش گفت یا عروسی نمی کنم یا اگه بخوام عروسی کنم فقط با پیدزو عروسی می پادشاه خیلی عصبانی شده بود. پیدزو رو صدا کرد و بهش گفت دخترم رو از دست داده. به خاطر تو با هیچ کسی ازدواج نمی کنه. به خاطر همین تو باید از این قصر بری. پیدزو گفت اله حضرت می منو از اینجا بیرون کنین؟ متاسفم. دوست داشتم ازت مثل بچه خودم مراقبت کنم. اما نمیتونم. ولی نترس. همیشه پشتیبانت هستم. و اینجوری شد که پیدزو از قصر رفت دنبال کار خودش شاهزاده خانم هم از ناراحتی خودش رو توی سومه حفظ کرد پیدزو رفت توی مسافرخونه و زندگی جدید خودش رو اونجا شروع کرد پنجره مسافرخونه مشرف بود به پنجره سومه ای که پپینا خودش رو اونجا حفظ کرده بود این دو نفر هر روز می کنار پنجره و از پنجره همدیگر رو دیداری می دادن. پپینا توی یکی از اتاقای سومه یه کتاب جادوگری پیدا کرد. اون از پنجره بیرون پرتاب کرد تا پیده اونو برداره. اون کتاب مال یه راهبه جادوگر بود که اونجا قایمش کرده بود. پادشاه فردای اون روز رفت تا به دخترش سر بزنه. از مادر ارشد اجازه گرفت تا بتونه پیش دخترش بره. چون پادشاه بود بهش اجازه دادن که بره پیش دخترش. وقتی پادشاه پیش دخترش رسید دخترش به پادشاه گفت گوش کنید پدر این کار رو که میگم لطفا انجام بدید. شاهزاده که اومده خاستگاری من یه کشتی بادبونی داره. شما هم یه کشتی دارید. کشتی خودتو به پیدزو بده تا هر کدومشون یکی از اونها رو بردارن و به سفر برن. هر کدوم که با سوقاتی های قشنگتری برگردن من با اون ازدواج میکنم. پادشاه گفت از این فکرت خوشم اومد دخترم. حتما همین کارو انجام میدم. و بعدشم رفت تا هر دو جوون رو راهی سفر کنه. نقشه دخترش رو هم براشون شرح داد. اونا هر داشون خوشحال شدن و قبول کردن. پیدزو دلش به کتاب جادوگری قرص بود و فکر کرد با اطلاعاتی که از اون کتاب میگیره می‌تونه بالاخره پادشاه رو راضی کنه و ثغاتیای خوبی هم برای دخترش بیاره. و شاه سادم از این بابت که پیدزو آهی در بساط نداره خوشحال بود. خلاصه. روز بعد هر دو جوان لنگرها رو کشیدند و به راه افتادند. پیدزو وسط دریا کتابش رو باز کرد. توی اون کتاب نوشته بود فردا به اولین خشکی که رسیدی پهلو بگیر و با همه خدمتکارات و با یه پارو پیاده شو. فردای اون روز به گفته یک کتاب به جزیره رسیدند. پیدزو و خدمتکاراش پیاده شدند و یه پارو هم با خودشون برداشتند و بردن. دوباره تو خشکی کتابشو باز کرد. توی کتاب نوشته شده بود درست وسط جزیره یه دریچه پیدا می بعد یکی دیگه و بازم یکی دیگه. با پارو در اون دریچه ها رو بلند کن و برو پایین. پیدزو درست مثل گفته های کتاب اون دریچه رو پیدا کرد یعنی دریچه رو پیدا کرد بعد با پاروی که تو دستش بود در اون دریچه رو باز کرد زیر یکی از اون دریچه یه دریچه دیگه بود و همینطور به ترتیب دریچه دیگه یکی بعد دیگری پیدزو وقتی در آخرین دریچه رو برداشت یه نردبون دید از اون نردبون رفت پایین و اونجا یه راهروی پر از طلا پیدا کرد. دیوارا، درا، کف زمین، سقف همهشون از طلا بودن. یه میز پر از غذا برای 24 نفر. قاشقا و نمکسوناشون هم از طلا بود. و توی کتابش نوشته شده بود همه شونو بردار. پیدزو، خدمتکاراش رو صدا کرد و دستور داد هرچی که هست و نیست و با خودشون بردارن و به عرشه ببرن دوازده روز طول کشید تا همه ی اون تلاها رو بار بزنن بیست و چهار تا مجسمه طلا اونقدر سنگین بودن که حتی نمیشد جابجاشون کرد فقط روزی میتونستن دو تا از اونا رو جابجا جا کنن و توی کتاب نوشته شده بود در ها رو مثل اولش سر جای خودشون بذاره پیدزو و خدمتکاراش همه یه این کار رو انجام دادن بعد هم دوباره لنگر کشتیشون رو کشیدند و براه افتادند توی کتاب نوشته شده بود بادبونا رو بکشن و به سفر خودشون ادامه بدن خلاصه پیدزو یک ماه تو سفر بود همه دریا نورداش خسته شده بودن. ازش می پرسیدن نا خدا داریم ما رو کجا میبرین؟ میریم جلو بچه ها. چند وقت دیگه می به پالرمو. پیدزو هر روز کتاب باز می اما چیزی توش نوشته نشده بود. بالاخره پیدا کرد. توی کتاب نوشته بود فردا یه جزیره پیدا می که اونجا باید پیاده شیم. کتاب دوباره بهش میگفت وسط جزیره یه دریچه است. درش رو باز کن. بعد دوتا تا دریچه دیگر رو میبینی. در اونا رو هم باز کن. یه نردهبون بوم میبینی. برو پایین و هر چی که اونجا پیدا کردی مال توه. پیدزو این بار هم همون گفته های کتاب رو اجرا کرد. توی زیرزمین، کلی غذاهای خوشمزه و خمره پیدا کرده بود. پیدزو توی کتاب خونده بود که نباید از اون غذاها بخوره. خمره سوم طرف چپ رو هم باید برداره. چون توش دواییه که هر دردی رو درمون میکنه. پیدزو خمره رو برد روی عرشه کشتی. روی عرشه دوباره کتاب باز کرد. کتاب بهش گفته بود که باید برگرده همه خوشحال شده بودن فریاد می زادن هورا هورا اما تو راه برگشت همینطوری که داشتن دریا نوردی می و جز آسمون و دریا هیچ چیز دیگه اینه یهو چشمشون افتاد به کشتی ترکا جنگ شده بود همه سرنشینای های کشتیه رو گرفتند و بردند به کشور ترکیه. پیدزو و خدمتکاراشو بردن پیش بالالیکی. بالالیکی پادشاه اون کشور بود. از خدمتکارش پرسید اینا مال کجان؟ اونم جواب داد اینا از سیسیلی اومدن حضرت. و دوباره بالالیکی گفت خدا رحم کنه. زنجیرشون کنید. فقط بهشون نون و آب بدین و بذار که سنگ ببرن و بیارن. خلاصه. پیدزو با خدمتکاراش زندگی سختی رو شروع کردن. پیدزو جز به شاهزاده خانومش که منتظر اون و سوقاتیاش بود به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کرد. از طرف دیگه سرتاب های پادشاه ترکیه کهیر زده بود. هیچ دوایی هم برای درمونش پیدا نمی وقتی که پیدزو از حرفای زندونی دیگه متوجه این قضیه شد به نگهبونا گفت که در عوض آزادیش میتونه پادشاهشون رو درمون کنه. بالالیکی وقتی این قضیه رو فهمید خواست که پیدزو رو پیش اون ببرن. بهش گفت هر چی بخوای بهت میدم به شرط اینکه به این حرفی که زدی عمل کنی. پزر پادشاه گفت شما باید به من قول بدید تازه باید یه دست هم به من بدید که وقتی که من کارمو انجام دادم و شما درمون شدید من اجازه برگشتن به کشور خودم رو داشته باشم و اجازه گرفت که به کشتیش برگرده کشتیش رو به ساحل آورده بودن اما از داخل کشتی چیزی رو خارج نکرده بودن چون دزدای دریایی خیلی جب مردی بودن پیدزو یه شیشه مرهم از داخل خمره برداشت و دوباره به قصر برگشت پادشاه روی زمین دراز کشیده بود پیدزو با یه قلمو شروع کرد به مالیدن مرهم روی سر و صورت و گردن پادشاه پادشاه از همون شب مثل یه مار شروع کرد به پوست انداختن و زیر اون پوست کهیر زدش یه پوست تر و تازه ظاهر شد. فردای اون روز پیدزو سینه و شکم و پشت پادشاه رو چرپ کرد. و شب پوستش شد. و روز سوم هم نوبت به پاها و دستاش رسیده بود. و با این کار پادشاه کلن معالجه شد و پوست جدیدی در آورد. و اینجوری شد که پادشاه بالالیکی به طور کامل معالجه شد. به خاطر همین به قولی که به پیدزو داده بود عمل کرد. پیدزو با خدمه هاش سوار کشتیشون شدن و به سفر خودشون ادامه دادن. وقتی به شهر خودشون رسیدن، بلا فاصله با کالسکه به سراغ پپیناک از خوشحالی، تو فوست خودش خودش نمیگنجید رفت. پادشاه ازش پرسید که اوزا از چه قراره؟ پیدزو گفت: خدا میدونه که چی شده اعلی حضرت. حالا میخوام یه تالار برام آماده کنید تا سوغاتیایی که براتون آوردم و اونجا بذارم. البته چیز قابلداری داری نیست. پیدزو خدمتکارا شروع کردم به خالی کردن تمام طلاهایی که آورده بودن. یک ماه طول کشید. همه ی رو که خالی کردن به پادشاه گفت اله حضرت من فردا آمادم. اگه میخواین اول بریم چیزایی رو که شاهزاده آورده ببینیم بعد وسایلی که من آوردم رو ببینید. پادشاه فردای اون روز رفت تا سوقاتی رو که شاهزاده برای دخترش آورده بود رو با هم ببینن. وسایل خونه، وسایل آرایش، چیزای خیلی قشنگی که حرف نداشت. پادشاه به شاهزاده تبریک گفت بعد هم با هم رفتن پیش پیدزو تا ببینن که چه سوغاتی آورده. شاهزاده تا اون همه زرق و برق و چشمایی خودش دید گفت واویلا بعد هم برگشت و پا به فرار گذاشت. پله ها رو یکی پایین اومد و سوار قایقش شد و دیگه هم کسی اونو ندید. جمعیت زیادی جمع شده بودند. همه فریاد می زنده باد پیدزو. پادشاه پیدزو رو بغل کرد و با هم رفتن پیش پپینا تا از سومه به خونه بیارن. بعد از سه روز پیدزو و پپینا با هم عروسی کردند. پیدزو بعد از ازدواج با پپینا رفت دنبال پدر مادرش که تا اون روز هیچ خبری ازشون نداشت. تفلکیا هنوز پا به را پیدزو برای پدر مادرش لباسهای خیلی زیبایی تهیه کرد. از اونها خواست که برای همیشه پیش پیدزو بمونن و توی قصر زندگی کنند. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمینهای را رامی سفر کنیم، جایی که پریها و کوتوله ها زندگی می کنن؟ کانال هزار افسان همون که, که دنبالش جایی که داستان های و ی سراسر دنیا به صورت سعوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا سفری